در هر دوسیقه ما افعلهو و افعل به از قدیم واجب شده جمود عرب اینها رو به شکل متصدف استفاده نکرده به حکم حتمه با حکمی که وجوبیست اینها رو من تصرف داده و غیر متصرف استفاده کرد. و اینها نزیر لیسا و عسا و حب و تعلم هستند ما احسنش نزیر لیسا و عصاست. گرچه ما احسن یک سیغه بیشتر نیست ولی لیسا و عصا مازیش ماضیش صرف میشه ولی در شکل مازی داشتن و جامد بودن فل جمله با هم شبیهند حب و تعلم فعل امر هستند و معناشون هم امر به معنای اعلام یک سیغه بیشتر نیست با احسن که یک سی و هست یکی است جامدند هر دو حب و تعلم تسنی و جمع ندارد طرف آل قلوب احسن هم ندارد اما حب و تعلم امر است ولی احسن سیغه مازی بوده و تبدیل لفظی شده به شکل هم گرچه انشاست ولی حقاً سیغهش مازی بوده که برای انشاء تعجب به کار میدم لذا گفت نزیر حالا میفرماید که شرایط ساخت افعال تعجب چیست؟ میگه و سقه هوا من سلاسن سرفا قابل فضلن تم غیر زی انتفا غیر زی انتفا به خاطر شعر ممدود تبدیل به مقصود شد و ما با, با با استینافیه سقه فعل و زمیر انت فاعل هما مفعول من زی متعلق به سق زی صفت یک موضوع مقدره مثل که بگیم جا انی یعنی رجلن یا شخصن زومالن اینجا هم سقه هما من فعلن. زی سلا سن فعلی که صاحب سه تا لفظه صاحب سه تا یعنی فعل ثلاثی مجرد پس شرط اولش چیه فعل باشد شرط دوم منزی ثلاثن ثلاثی باشد اون به ثلاثی مجرد ثلاثی مزید رباعی مجرد و رباعی مزید نباشد دو دوم پس منزی متعلق به سخما صرفه فیل زمین نائب فاعل بش صفته فعلا صفت زیست اما گرچه خود زی و این هر دو صفت فعله مقدرن موصوفه ما صرفه زمین ذمیر نائب فاعل جمله نه محلا مشهور قابل فضل صفت بعدی است اون صفت جمعه بود این صفت مفرده قابل فضلن زیادی و نقص رو به ها قابل بالا و پایینی باشه که یکی رو بشه تر برش گذاشت آوردن لفظ تر بر سر اون درست باشه قابل فضلن تم من فیل فایلش اون فیل فیل تام باشد با صفته غیر زی انتفاع این. صفت بعدیش اینه که صاحب انتفاع صاحب نفعی بگی نباشه فعل منفی هم نباشه شرط بعدی و غیر زی وصفن یوزاهی اشخلا و وزن افعال هم به عنوان صفت مشبهه بگی نداشته باشه و غیر عطف به جای غیر قبل است معتوف در حکم معتوفان علیه اینم نعت محصوب میشه زی وصف مضافان علیه غیره زی و زی خودش هم اضافه شده به بس. یوزاهی یعنی یوشاکه یعنی یوشا به عشحله شده عشحلاف شیطش اعتاست یوزاهی عشحلافه زمیر وصف فائلش اشخله مفتول فایلش رابطه صفات به موصوف هم هست چون این جمله یو ظاهی حالا صفت وصفه پس صاحب وصفی که وزن افعال دارد مشابه وزن افعال دارد مشابه اشخل دارد بگو نداشته باشه و غیر باز صفت بعدی عطفه به جای غیر اول و باز هم معتوف در حکم معتوف در سفر و غیر سالکن سبیل فعلا یعنی و غیر فعل سالکن این سالکت که کلمه موصوف مقدر و سبیل را به عنوان مفعول من داشته. و غیر فعل سالکن سبیل فعلا و فعل مجهول هم نباشه. و غیر فعلی که رونده است پیماینده است طریقه فعله رو یعنی طریقه فعله مجبوره اینه یعنی از فعل مجبور هم ساخته نمیشه بینیم چند تا شرط شد یک فعل باشد پس اسم ازش افعال و تفضیل ساخته نمیشه دو سلاسی مجرد باشد سه متصرف باشد چهار قابل فضل باشد تریت بفضیرد پنج پام باشد شش منفی نباشد هفت دارای وصف صفت مشبه وزن افعال نداشته باشه هشت فیله مجبور نباشد این هشت شرط رو یاد میگیرید بعد از این بحث بحث افعال و تفضیل هر هشتاش مورد نیاز. غیر فعل سالکن سبیلا فعلا بیاد بون و صغ ما من فعل موصوف رو آورد من فعل زی احرفن سلاسل ها میگه این سلاسل صفت یک احرف مقدره و احرف جمع بوده سلاس چی اومده بدون تاومه زی احروفن سلاسن یعنی سارای سهر دارای حروف باشه اما اون حروف هم چند تا باشه؟ سلاسه ستا مثل مرد تو به نسبت ار و این اینجا احروفن سلاسن منفعلن زی احروفن سلاسن به خلاف دهرجه میگه بخلاف دهرجه دهرجه نمیشه و انطلقه و اقتدره و استخرجه و احمله و از اینها سابقه نمیشه چرا؟ چون اینها یا فعل سلاسی مزیدند یا روایی مزیدن یا روایی مجلد بهتر بود اول مثال میزد به انطلقه و اقتدره و استخرجه و احمله یعنی سلاسی های مزید بعد مثال میزد به دهرجه ربایی مجدد بعد مثال میزد به اهرنجمه ربایی مزید یعنی ترتیبش مرادش از اینها ساخته نمیشه چون اگر از اینها ساخته بشه مستلزم اینه که ما یه مقدار از وزن رو مندازیم دیگه یعنی مثلا اگر از مثلا استخراج ما بیاییم به مجبور میشیم که خرزش رو بگیریم چون وزن افعل یه همزه زاید داره یه فا و این و غالبش برای سلاسی ساخته شده اگر از غیر سلاسی مجلد بیاد باید زواهدش رو چکار کنیم؟ حذف کنیم و اگه حذف کنیم انتباس پیش میاد یعنی استخرجه ازش دلست کنیم میشه اخرج معلوم نمیشه از اخراجه گرفته شده از استخراج گرفته شده از خرجه گرفته شده یا از خرجه لذا دیگه از اینها ساخته نمیشه چون غالب مال ثلاثی مجلده از غیر ثلاثی مجلد بیاریم باید تبدیل به سلاسی مجلده کنیم و ارتباض بشه صد نفر متصرف باشه خب واسه خاطر اینکه میخوایم ازش از از دیگه درست کنیم دیگه جامع باشه که دیگه صیغه دیگر درست کردن از اون درست صور به خلاف نعما و به اثر که از اینها اولو تفسیل ساخته نمیشه چرا چون فعلشون متصده نیست همینطور مثلا لایسر قابل فضل طریقت بپذیرند چرا چون زیادی رو برسونه که بشه تعجب کرد اگر یه فعلی باشه که اصلا زیاد و نقص در اون نیست دیگه که برای همه مساوی است اصلا ترییت نمیپذیرد بگو دیگه تعجب در اون معنا معنا نداره قابل فضل ای زیادته فضل میگه معنای لغویشه یعنی زیادی زیادی رو بفهمونه که علم و احسن میشه اعلم بگیم یعنی جاناتر، احسن بگیم یعنی چی زیبا تر؟ میشه اول و تفثیر از یکاب چون نل تفسییل میشه طرریت رو میفهمونهه زیادی فضل رو میفهمونه پس اول و ترجبش هم درسته بگی ما عالم او. این چقدر عالمه یعنی ما از زیادی علمش چکار کردیم؟ تعجب. اگر همه در علم مصوی بودن ها؟ دیگه اصلا تعجب معنا؟ نداشت ما احسن نبود چقدر این زیباست؟ اگر همه در زیبایی مصبی بودن دیگه معنا؟ که علم و حضنه به خلاف نحوه ماته و فنیه به خلاف ماته یعنی مرد یعنی روح از بدنش خارج شد همه خب روح از بدنشون خارج میشه تا موقعی که روح از زندن وقتی روح خارج شد مردم جست میشن فنی هم یعنی نیز شد یعنی هستیش از دست دار در همه مصابیس ها هستی در همه برابر همه هستن پس معنی نیستیشون هم برابره مثلا نیست تر دیگه ما مرده یعنی کسی که روحش خارج شده دیگه مرده تر نداره مرده مرده است دیگه تریعت قابلیتش رو به خلاف ماده وفنی هم تام باشد تام باشد یعنی فعلی باشد که دارای معنای مصدری است به خلاف کانه برخلاف کانه که از کانه ساخته نمیشه چرا؟ چون ناقص دلالت بر معنای مستری بگید نمی به همین دلیلش میگن ناقص دیگه. فیلتا هم دلالت بچی میکنه معنای مستری میکنه به انزمام زمان معنای مستری رو با مادهش میفهمونه زمان رو با حیعتش میفهمونه اینا دلالت مطابقی میکنه به این دوتا با این دوتا به دلالت التزامی میفهمونه که من فایل هم لازم دارم فایل و ما رو میفهمونه به دلالت التزامی درست؟ فعل ناقص معنای مستری نداره ناقص دلالت برحده است نمی کنه و فعل تحجب اصلا وزعه میشه برای چی؟ برای تحجب کردن از معنای مستری فعل یعنی وقتی شما میگه ما علمه از چیه او تعجب کردی؟ علمش معنای مستری ما احسنه همه از چی تحجب کردیم؟ از زیبایی از معنای مستری که در اون تحقیق پیدا کرده و شما علتش رو نمیدانید تحجب میکنید دیگه فعل ناقص اصلا معنای مستری ندرسته؟ تم به خلاف کانه و کاده افعال غلوب و افعال مغاربی چون مثل همه افعال غلوب و افعال مغاربه نزد سی و به یکیست هستن الا اینکه که میگه افعال مغالبه همون عمل افعال کان نرمی کنن الا این که قبرشون فعله مزاره غیر فعل زی انتفاعه بدون فعلی که منفی باشه فعل منفی نمیشه حالا فعلهای منفی بقلش بینستید مطلقا غیر فعل زی انتفاعه مطلقا زی انتفاعه میگه ای منفیه یعنی فعل منفی ترک وطن مطلقا چون فعل ها فعل های منفی دو جورند یه موقع فعل منفی داریم که مثبتم هم داره مثلا ضرب تو مثبت ما ضرب تو یعنی چی نزدم منفیه از ما ضرب تو ساخته نمیشه بگیم ما از او یعنی چقدر کتک خورده از کتک خوردنش تعجب کنیم چی از نگردنش ما زربتو از نزدن یا ما زربتو از این رو درست کنیم بگیم ما از ربکه یعنی چقدر تو زننده نیستی از منفی بخواهیم از نبودنش تعجب کنیم و سیغه تعجب بسازیم از منفی نمیشه چرا؟ به دلیل اینکه اگر بسازیم با مثبتش مشتبه میشه ما اگر گفتیم ما از ربکه معلوم نمیشه که چی؟ یعنی تقدر تو زننده هستی محضرت ترجم کردی یا چقدر زننده نیستی و محضرت ترجم کردی. معلوم نمیشه. این یکی فعلیه که مثبت هم داره یه واقع فعل هستش فقط منفی استفاده میشه اصلا مثبت بگید نداره مثل آجا یعیجو آجا یعیجو به معنای انتفعه به معنای چی؟ انتفع فقط منفی استفاده میشون ملاسم است به نفی فقط درست؟ لذا ملا جلال مثال میزنه فی, فی،, فی منفیم به خلاف نهو ما اجتو به دوا ما اجتو به دوا یعنی چی؟ یعنی ما انتفعتو به دواه یعنی سودی نبردم به این دارو. یعنی این دارو رو خوردم اما سودی نبردم ما اجتوبت دوائه فقط چی استفاده شده بگید منفی یعنی سود نبردم به این دارو اگه سود ببره نمیگه اجتوبت دوائه میگه امتفعتوبت دوائه آه. آجه یا ایجا فقط چی استفاده میشه؟ منفی حالا اگر از این فعل درست کنیم چی؟ دیگه مثبت نداری که باش مثلا من بگم ما اعاجه یا ما اعاجه که یعنی چقدر تو سود نبردی از این دارو این فقط منفی استفاده میشه مثبت نداره که ملتبس بشه این چی اینجا دو قوله ایدهی گفتن که اگر منفیش ملتبس نشه بگید اشکالی توش نیست ازش ساخته میشه آی مولا جلال میگه خیر اگر منفی حتی مثبت هم نداشته باشه ازش ساخته نمیشه یک به دلیل این که تردن ما بگیم اصلا منفی ساخته نمیشه ازش چون در 80 درصد فعل ها بلکه بیشتر التباس پیش میاد یه 2-3 درصد فعل هست که فقط منفی میاد اونا هم هم کردیم به این موارد و گفتیم کل در از فعل منفی ساخته نمیشه تردن لرباب یک دو و من همین فعل ایجو که فقط منفی استفاده میشه و ملازمه به نفیه یه دنه آجه یعوجو هم داریم که به معنای مال یمیلو آجه یعوجو به معنای مال بگید یمیلو که داشتیم تمررو دیار ولم تاوجو تا کلامکم ازن علیه حرامون یعنی لام یمیلو یا آجه یعوجو هم داریم به معنای مال یمیلو این دوتا که با هم مشتبه میشن درست مثبت نداره اما مثبت باب دیگر بگی هست که با او چی بشه ملتبست بشه پس ما یه آجه یا ایجا داریم که فقط با نفی استفاده میشه یا آجه یا ایجا داریم که نفی مثبت هر دو رو داره معناهاشون هم یکی نیست یکیش به معنای انتفع است، یکیش به معنای ماله یمیلوه خب این دوتا با هم مشتبه میشن و یکی به مثبت خودش ملتبس نشده بلکه به مثبت فعل دیگر چی گفتی گفتی فعل دوگونه است یکی مثل ضربه مثبت داره منفی هم داره ما ضربه از این ساخته نمیشه از منفیش چرا چون با ملتبسش با مثبتش ملتبس میشه دو فعلی داریم مثل آجه ییجو که فقط ملازم نفی است پس اگر از این ساخته شه مثبت نداره که باهاش ملتبس بشه میگیم این یکی دو درصده این هم حملش کردن به همون قسم غالب گفتن از این هم نساز یک دو با این آجه یه ایجه درسته خودش مثبت نداره ولی ما یه آجه دیگر داریم که او مثبت داره به معنی ماله یعنی دو با اون اشتباه میشه زی انتفاعین مطلقاً ای منفین به خلاف نحو ما تو به دوام و ما تو، زیدان حالا فهمیدین چرا دو تا مثال زده یکیش فعلش فقط منفیه یکیش فعلش مثبت هم داره و غیر فعلن و غیر و غیر فعلن زی وصفن گزاهی حالا و فعلی که دارای وصف اش حل باشد یعنی صفت مشبهه بر وزن باشد نباشه توا ازونی که وزن افعل داره دیگه افعل دیگر ساخته نمیشه دو تا وزن افعل نمی‌سازن درستو از یفه یکیش بشه صفت مشبهه یکیش بشه افعل تعجب یا یکیش بشه صفت مشبهه یکیش بشه افعال و تفضیل دیگه نمیشه زی وسط نی گزاهی اشهلا فیکونی الا افعل میگه اینکه گفته وصفی داشته باشه مشابه اشحال میگه اگه تشبیش کرده به اشخال اشخال یعنی کسی که چشمش سبزه که محنسش میشه چی؟ شهلا این یوزاهی اشخلا میگه اشخال شهلا گفته نمیخواه بگه مثلا دلالت بر رنگی کنه یا دلالت بر بگیر وزنی بکنه که مثلا عیبه یا حسن منظورش وزنه اگه اشحل مثال زده میتونست احمر مثال بزنه میتونست اعما مثال بزنه وزن و مورد نظر داره ماده اشحل شهلا مورد نظرش نیست لذا گفته فی هی در بودنش الا افعله به خلاف زل وصفل به خلاف اون وصفی که بگید مشابه وزن افعل باشه یعنی وزن افعل داشته باشه به خلاف فعل زل وصفل و سویده و عویره که چی رو داره؟ اسود رو داره که دلالت بر لنگ میکنه عویر رو داره یک چشم که دلالت بر عیب میکنه مم. سویده و عویره و غیر ان سالکن سبیده فعلن فعلی نباشه که فقط راه مجبور رو یعنی فعلی که مجبول باشه هم نباشه چون اگه از مجبول بسازیم با معلومش با چی میشه؟ مشتبه میشه <تصفيق> یعنی ما اگر برگردیم بگیم مثلا ما از ذرابهو معلوم نمیشه از ذرابه گرفته شده یا از زوربه ما از کتک زننهو زیاد تعجب کردیم یا از کتک خوردنش البته وزن مجبول هم دو جوره یکی رو داریم که فقط مشغول به کار میره اصلا معلوم نداره مثل انیت ذهیت اونی تو به حاجتت یعنی حاجتت به دل میخوام حاجت انجام بدم اهتمام تو به حاجتت اونی تو به حاجتت فقط مشغول اونیت تو ولی ذهی علینا یعنی تکبر علینا ذهی زیدون علینا با ای و هید یعنی چشم یعنی تکبره علیه فعلایی داریم که فقط مچهول به کار میره اوله تو به کتاب سی و بی اوله تو اوله ابه او یعنی شیفته شدن این اگرچه سلاسیه مسیحه فعلایی داریم فقط مچهول به کار میره یه فعلایی هم داریم نه معلوم و مچهول داره دارم مثل زره و زره که قالبن اینهای دومی هستن میگه فیکونه هی مبنی یا للمفعوله به مبنی برای مفعول باشه یعنی فعل مچهول باشه به خلاف سالک زالک به خلاف اونی که حرکت کرده سالک زالکه یعنی زالکه از طریقه این طریقه فعله رو رفته فعل مچهول رو نهو زوره بر مانند چی چی؟ زوره بر فعل مچهول و شط من باز مجهول از اینها دیگه ساخته نمیشه فعل معلوم هم دارن ضربه و شتم لاکن اینجا استثناء کردن گفتن از اونی که فقط مجهول ساخته میشه از اون ما میتونیم درست کنیم فقط مجهول داشته باشه لاکن یستس نا ما این لاکن دفع غلط ذهنی رو میکنه یه استدراک یعنی دفع غلط چون به ذهن میاد پس بنابراین هم مثل منفیه هر دوش شده مطلقا میگه نه اینجا مطلقا نیست لاکن یستسنا ماکان ملازمن ظالکه لیکن استثناش شده اونی که ملازمن ظالک ملازم از این مچهول بودن رو همیشه مچهول میان نه و اونی تو به حاجت کن اونی تو به حاجت کن این حاجتت به دلم افتاد بابا هم میاد اونی تو به حاجت و یقال قالو ما اعناهو میگیم این چقدر؟ احتمام به شما داره میگیم ما اعنا و ها به حاجته که به حاجته گوشش بنویسید که معنا درست بشه ما اعنا و ها به حاجته کرد میگیم این چقدر کار تو رو به دل گرفته ها حاجت تو به دلش درسته یا مثلا فرض کنی زه ی علینا یعنی پوز داد بر ما تکبر کرد بر ما میگیم ما از ها و علینا چقدر این پوز میده بر ما تحجب میکنیم از پوز دارنش فقط فعال مجموع خب نقطه سرقه گفتیم هشت شرط برای فعل های افعال تحجب ساختن و بعدا هم میگیم افعال و تفضیل ساختن داریم هشت شرط حالا اگه یک فعال این هشتاره نداشت چی؟ میگه بعضیاش هستش که اصلا صالبه به انتفار موضوع اگه بخوایم بسازیم مثلا اونی که قابل فضل نیست این اصلا ساختن دیگه براش متصور نیست چرا چون اصلا صلاحیتش رو نداره بقول آقایون تخصصیان خارجه نه تخصصیان اصلا نیست تو مایه ساختن اونهایی که شرایط فضل رو دارند اما شرایط دیگر رو ندارند از اونها چطور میگه از اونها میسازیم اما به وسیله فعل کمک میگه وش و او اشدد او اشدده او شکوه و مثل اعظم و اعظم اکثر و اکثر هر چی که دلالت بر بیشتری کند یخلف ما بعض از شروطه ادما جانشین می شود آنچرا که ادما بعض از شروط از دست داده است بعضی از بگیر شروط واب واب استینافیه عشدد و او عشدد مبتدا هستند. او شفه همان که عطفه دیگه یعنی عشدد مبتدا است. او عشدد او شفه ما عطفه جایی این مبتدا یخلوفو تا آخر جمله میشه چی؟ خبر میشه یخلوفو فعل و زمیر فایلش که برمیگرده به یکی از این ستا چون با او عد کرده فیل رو چی آورده؟ مفرد آورده مثل زیدون و امرون و بکرون قائمان آره یا قائمون قائمون اما اگه بگیم زیدون او امرون او بکرون میگیم چی؟ قائم. یخلف و ما فیل و فایل که فایلش رابط خبر بسید مبتدام است. ما مفهولش عدم مفیل زمیر پایلش که آید سلست بعض شروط مفهول اده اشدد او اشدد او شبخوهما ما بعض شروطه اده ماما بیاییت فایی اشدد او اشدد او شبخوهما که اکثر و اکثر اعظم و اعظم یخلوفو فه تحجب ما در باب تعجب. جانشین می شود آن که بعض از شروط عدمه بعضی از شروط را از دست داده است به انکان زایدن الاس الاس تحروفه به اینکه که سلاسی بگید نیست آه. سلاسی نیست یعنی سلاسی مجلد نیست یا سلاسی مزیده یا روایی مجلده یا روایی مزید نگفت شرط اول رو به اینکه فعل بگید نباشه چون از اسم اثر تعجب ساخته نمی‌شه نادر ساخته شده ها یه شعری خوندیم که فاج در که گفتم به هیچ چی افتاده شازن ها. بعد از اسم بهم و ابسر نمیشد الان اجدر از چی ساخته شده از جدی ها بعضو گفتم فعل نه مثلا اقمن ما اقمنه هو. از غمین ساخته شده یا همین جا الان میخونیم ما از ذر از ذرا ساخته شده. از اسم ساخته بشه خیلی ندرت داشته یک پیوت تا بیشتر شد نبوده دیگه ذکرش نکرده. به انکان زائدن یعنی اصلا دیگه با شده و شتت ساخته نمیشه از اسم لذا اون رو نی اگر یکی دو تا هم از اسم رسیده بر همون وزن افعل خودش ساخته شده از اس مثلا اقمن رو درست کردن است غنیم اصلا با اشد و اشتد نیست بذا ذکرش نکرد به انکان از زائدن علا ثلاثه احرفه ای یک او وصفه علا افعل یا صفت مشبهش بر وزن افعل باشه او ناقصن ناقص باشه نه و ما اشد ده ببود. دهرجته. مستر همون فیل رو میاریم به شکل منصوب ما اشد دهرجته و همرته از احمر داشتیم و اشدت ببینید با اشدت اشدت به کونهی مستقبلن یعنی چقدر داره تونتون میاد استقبله یعنی رو آورد چقدر داره تونتون تونتون میاد اشدت به کونهی مستقبلن مثلا فرض رو ما قرض گرفتیم که مثلا سال آینده فلان روز پولش رو بدیم یه نفر میگه داره میادا اون روز میگیم اشتت به کونهی مستقبلن چقدر داره تندوم میرسه الان اشتت به کونهی مستقبلن کون مستره اضافه شده به ها اسم خودش و مستقبلن چیه خبرشه معلوم اشتت به کونهی مستقبلن یعنی چقدر داره تندوم میرسه فرض کنید زمیر کولهی بخوره مثلا به موعد قرض ما و کذا امکان منفی هست ببینید با کذا میگه اونا رو چکار کردیم خود مستر رو آوردیم مستر ربایی مستر اونی که وزن افعال دارد و مستر فعل ناقص رو آوردیم گذاشتیم بعد از فعلمون حالا اگر ما بود منصوب شد اگه افعال بود مجبور شد به با شد اشتت بکنه این اشتت ادغام هم نمیشه نمیشه اشتت ادغام در این سیغه نیست چون جامعه دیگه کذا امکان منفی هست ما کذا میگه چون یه ذره فرق با قبلی داره و همچنین اگر منفی باشه یا مبنی لل مفعوله یا مبنی لل باشه از اینها هم گفتیم ساخته نمیشه ولی میگه از اینها ساخته نمیشه با اشد و اشدد میتونیم بسازیم اما یه فرق داره شما خود مصدر صحیح حالا نگاه کنید ما ضرب تو اگر ما ضرب تو رو ما بیایم ازش بسازیم بگیم اشدد به ذرب گی یا بگیم ما اشد ده بگو ضربه اون ملتبس میشه دیگه نمیشه چرا چون معروب که مشهور بوده یا معلوم بوده منفی بوده یا بگیر مثبت بوده ولی اگر مستر محول بیاریم جاش مستر محول بیاریم اشکالی توش نیست مشخص میشه نگاه آقای این دران لیکن مستر همه محول میاریم از میاری مستر با ان نه با ما اکثر انلا تقومه از لا تقومه ساخته شده میگیم ما اکثر انلا تقومت چقدر زیاد تو نمیستی ایستی تو چقدر زیاد شده یه نفر مثلا داریم رعی میگیریم میگیم اونایی که موافقم بلند شد یه همشه نشسته میگیم ما اکثر انلا تقومت ما اکثر انلا تقومت اگر ما به این شکل نگیم و بگیم ما اکثر قیامت مشتبه میشیم انلا تقومت و اعظم به ما نسره ما مستریگه سار اعظم به ما نسره یعنی چقدر عظیم است یاری شدن اون کمک شدنش خب اگر ما هر گردیم بگیم اعظم به نسرهی معلوم نمیشه به یاری کردنش یا به یاری شدنش نظر بگه مستره ما اول میاریم تا این مطالب قشنگ مشخص میشه میگیم خب حالا از اونی که قبول فضل نمیکنه چطور درست کنیم میگه اون دیگه سواله به انفه بخصوصا خارج از اون ساخته نباید بشه چون نمیشه تر نمیتوازید تعجب نداره میگه و مستله ابن الناظم للذی لا یقبل الفضل ابن الناظم اومده برای چیزی که قبول فضل نمیکنه مثال زده به ما افجعم او تخمید یعنی چقدر دردناک شده مرگش و افجه به موتهی مثال زده به افجه از موت درست کرده مستر ماتر آورده بعد از اشده یا اشده او شبه و ما اینجا چی بوده؟ افجه هست. درست شد. و افجه میگه ابن هشام برگشته به ابن نازم جواب داده گفته عزیز من قال ابن هشام لا یا تعجب و منها البته تا مفعول و مطلقه یعنی قطعاً، بدتا یعنی قطع یعنی قطع قطعن. یعنی قطعی شده حتمی شده که چی؟ لا يتعجب تعجب و من ها. از موت تعجبی موت باید است از زهوق روح از بدن این در همه برابر دیگه فجی. فجی و غیر فجی چرا لعنت هولات فازولفیه لعهدن بر احادی در شدن روح از بدن و جیس شدن دن با هم فازیلاتی و مس در و در اینو بالا گفتیم دیگه میگه حالا چجور بعد از اشد بیاریم میگه در اون منصوب بیاد و, و آدمه بعدو ينتصب و بعد افعل جر رو هو بالبا یادت معدل بولوز و با با عاطفه مصدر مبتدا اضافه شده به آدم یعنی الفعل فعل ال ادمو یک فعلی که از دست داده است بعضی از شروط رو مصدر ال ادم مضاف الیه مصدر مبتدا ینتسه با فعل و فائل و ضیر مفتدا فائل رو رابط مستر اون آدم قبول نصف میکند بعدو بعدو یعنی بعدا هم بعد از بگو بعد از کد هاشون مستر قبول میکنه بعد از اشدده باید بگیم دیگه نه اینجاره مست و آدمه بعدو یعنی بعد اشده بعد از اشد ینتسه مضافون علای افتاده لفظش در نیت نبوده معناش در نیت بده ممنونی و زمین چون ممکنه هشت نباشه چیزی دیگه باشه و بعد و, و, و, و بعد افئل اما بعد از افئل جر روحو بلبا یجبو جر دادن اون مستر آدم به وسیله با چیه واجبه جر روحو مبتده مستر مجهوله یعنی مجرور شدنش و اضافه به نائب فایش شده هو خوره به آدم بعد از افئل بعد متعلق است جر مجرور شدن این مستر آدم بعد از افئل بلبا متعلق است به همین جر مجرور شدن این مستر آدم بعد از افئل به وسیله با یجب زمین فائلش جمله خبر مجرور شدن این مستر آدم بعد از افئل اونم به وسیله با با زایده زایده لازمه چیه؟ چه و مستر فعل آدم شروط لامش لامه تقیید مستر فعلی که از دست داده است بعضی از شروط را بعضی شروط را بعدو یعنی بعد اشده بعد اشده بعد از اشده و نهوش یعنی تسه که منصوب میشه و بعد افعل ای اشده بعد از اشده جرهو بلبا یه چه مجرور شدنش به با واجب است که غیرهی مثل غیرهی مستر محافظ یعنی هر چیز دیگری هم بیاد بعد از بای که واقع میشه بای اشتد به چی میشه؟ مشتور میشه بعد از بای افعال ترجمه شون بای جهار رستی بای جهار لازمه جر و بل بای یه جب که غیره هرچی که بعد از افعال میامد منصوب میشد و مفعول هرچی که بعد از افعال میامد به با میشد میگه مستر فیل آدم هم از این قاعده مستثنه کما تقدمه هم. همانطور که گذشت که هر که بعد از افعاله میاد منصوب و هرچی که بعد از افعاله میاد مجبوره به باست مگه نگفت و تل و افعاله انسبن نه بود کما او خلیله اینا و از دق بهم و به ندوره بالا میبه کن حالا میگه هر چیزی که به وسیله خودش ساخته نشد به وسیله اشدد و اشد هم بگید ساخته نشود مثل مثلا فرض بفرمایید از قمین که اسمه اومدن ساختن ما اقمنه او این چقدر شایسته شده ما اقمنه او به کذا این چرا شایسته به فلان است اینجا میگه دیگه نادره جز مواردی نیستش که بشه ذکرش کرد آن سماعی یکی دو مورد بیشتر شنیده بشه. و به ندوره واقعه استینافیه احکم احکم فیل زمیر هنده به ندور متعلق به احکم لغیر ما زوکر لغیر متعلق به احکم اضافه شده به ما ذکر فر زمیر نایب با آنش میگه به ندرت خوکم کن برای خیر آنچه که ذکر کردیم که خودش ساخته میشد یا با اشد و هشده و, و مانندش وَلَا تَقِسْ عَلَلَّذِي مِنْ هُوْ اُسْرَم و هر چی که بگو غیر از این چیزهایی که گفتیم بر تو رسی مثل مثلا ما اقمنهو که از اسم دلست شده ولا تَقِسْ قیاس نکن عَلَلَّذِي مِنْ هُوْ اُسْرَم قیاس نکن بر اون قیاس نکن بر آن چه که روایت شده از این یعنی غیرش رو یعنی دیگه ما اقمنه ساخته شده تو نره از یک اسم دیگر هم تو قیاسم بساز و لا تقس متعلق به لا تقس و لا تقس فعل و زمیر انت فایل علال متعلق به لا تقس اوسرا فعل زمیر نائب فاعلش، منوها متعلق به اوسرا او سره منحوره بگیرید نایف فایلش با من متحدی شد اشکالم نداره نایف فایل اگر جار و مجرور باشه میتونه بر فیلش مقدم بشه چون ملتبسته به مقتده بگی بگیر فایل و نایف فایل مقدم نمیشن چون اگه مقدم بشن چی میشن التباس به مقتده میرسونن ولی اگه مجرور به حرف جار باشه مقدم شدنش اشکاله. مثل این نصم اول بسر اول فعاد کل اولای که کانه انهو مسئولا انهو نایفایل مسئولانه. و او چی شده مقدم اینجا منهو متعلق به است و نایفایل است مثل غیر المخضوب علیهم که علیهم نایفایل المخضوب مفعول لاتقس هست شده دیگه نه میگه قیاس نکن الذيمن <اللزی> هو اسره یعنی المروی یعنی روایت شده لا تقص على المرویه غیره هو. قیاس نکن بر آنچه که روایت شده از عرب بگی غیر او رو غیر او رو براش قیاس نکن مثلا مفعولش غیر یا مشابهه او یا ما ماصله او ها نظیره او این و به ندوره ایل قلته میگه منظور قلت هست احکم غیر ما زکره احکم کن برای آنچه که غیر اینایی بود که ذکر کردیم مثل کقوله ما از رعه ها یه خانومی رو نگاه میکنیم میبینیم که خیلی این پنبه ریسیدن هست این ما از رعه ها یعنی چقدر تون تون تون تون تون میکنیم میگیم چقدر ریسندگیش تون به چقدر دستش چابکه در ریسیدن میگه ما از رعه ها تحجب میکنیم چقدر این چابک است خب این از رعه ها از چی درست شده میگه من امرعتن زرائن از امرعتن زراین ساخته شده زرائع یعنی چی؟ یعنی چابک در ریسیدن مرمون میرزا ابو میگه اینو زرائع بخانی مثل بقال قدتار و وزن فعال باشد دیگران در کتب لغت زراع نقل کردند براد شد امراد زراع علایه ها اسم است به معنای چابک دست اما چابک دست در ریسیدن ای خفیف و تلیده یعنی چابک دست در ریسیدن قزله یعنی چی؟ ریسیدن خب این الان از چی درست شده بگید از اسم و ما اخصر یه کتاب رو نگاه میکنین مثلا الفیه ابن مالک میگن این همه نه توش هست میگه ما اخصر هو یعنی چقدر میگه مختصر شده چقدر خلاصه شده ما اخصر من اختصرت از اختصره گرفته شده یعنی دو تا شذوزیت توشه یکی اینکه چیه مزیده و دیگری اینکه مجهوله ما اختصرت و ما اعصاه و اعصبهی میگیم این چقدر امیدوار است ما اعصابی و اعصبهی چه امیدی دارد یعنی ما اعصاب زیدن و اعصاب بزیدن یعنی چقدر زید امیدواره از چی گرفته شده؟ فله ناقص آن تام نیست من اعصاب و ما احمقهو را نگاه کنیم چقدر احمقه از عمقش تعجب میکنیم ما احمق او من حمیق فاو احمق یا حمق فاو و احمق از این گرفته شده و شما میبینید که این وزن افعل دارد و چیزی که وزن افعل دارد صحیح نیست ازش ما افعل ترجمه مگر اینکه که با چی می ساختیم با اشتده و اشتده. بدون اشتده و میشه نادر میگه فسم ازالک میگه ما منظورمون از نادر اینجا یعنی چی؟ یعنی شازده قیاسی نیست میگه فسم ازالک اینا رو همه رو تو گوشت بسمور که یکی دوتا گفته شده اما اوسرا میگه این رویان العرب. اوسرا میگه رویه میگه قیاس نکن بر آنچه که روایت شده از عرب حجت عرب مقدم عرب جاهلی عرب مقضمی و عرب متقدمی از این ستایفه اگر چیزی از تو روایت شده لا تقص کل ما شاکره مفهول لا تقص هرچی رو که مشابهشه چیزای مشابه رو بر روی قیاس نکن بگو اونا از احمق ساختن خب من میام مثلا فصلو از عبیز میسازن میگم ما عبیز اخور یعنی چقدر این سهی قیاس فعل این باب فعل جامده فعل جامد فعل زعیفه لذا معمول این باب بر او مقدم دلیل های دیگری هم داره تو متن میگه نگاه کنید و فعل و الباب لن یو قد دما معموله و وصله بهی زمان و وصلهو بهی زمان و فعل و الباب و باب استینافیه فعل اضافه شده به حازها الباب ستا ترکیب داره بدل عطب بیان نه فعل این باب لن یقدم معمولهو لن یعنی چی؟ با ترکید یعنی هرگز مقدم نمیشه معمولش به هیچ بچه لن یقدم معمولهو نای فایل یقدم است جمله لن یقدم معمولهو خبر فعل این باب معمولش بر اون مقدم نمیشه باب باب استینافیه و ورس لهو بهی ارزما ارزما ارزمن بوده دیگه نه فیل است و فایل نون تحکیل قلب به علف شده زمان زَمَنْ وَسْلَهُوْ بهی ملازم باش حتما وصل کردن هو یعنی چی؟ یعنی این معمول رو بهی به این فعل وصل این معمول رو به فعل تو چی باش؟ ملازم باش الان وصلهو بهی دو تا زمین داریم دو تا مدجعه یکی فعل هازالباب یکی معمولهو چجوری برمیگردونیم؟ دور در دور نزدیک در نزدیک وصله ها میخوره به معمول بهی میخوره به فعل. وصل این معمول به فعل رو ملازم باش م? میگه به هیچ فتح فاصله نمیشه میگه چرا وابا به استینافی هست. فصله به ظرفن و به حرف جلن مستعملون اما اگر بین افعل و معمولش مثلا فصله ما احسنه زیدن بین احسن و زیدن ظرف یا حرف جر فاصله کنه بین احسن و به زیدن ظرف یا حرف جر فاصله کنه مثلا بگیم ما احسن فل حرب زیدن یا احسن فل حرب به زیدن جار و مجدور ظرف فاصله بکنه و فصل رو به ظرف او به حرف جل مستعملون استعمال شده ول خلف و فیضاکه استغرده درست استعمال شده اما در این مطلب چی دارن؟ اختلاف دارن اده قبول کردن اده قبول مکن و فصل و هو مبتدار. به ظرف متعلق به فصل او حرف جر عطف به جای زر مستعملون خبر فصل و هو مبتدان مستعملون باب باب آتفه الخلفو اسم مستر اختلافه یعنی اختلاف کرد متعلق به خلف اختلاف در این فاصله کردن فیزاک الفصل در این فصل اختلاف استقرر به زمیر باید. یعنی موجود استقرر قرار یافته است، ساکن گشته است. استقرار دارد اختلاف در این مطلب بین نحوی ها بعضی ها قبول کردن بعضی قبول نکردم درست شو. بیایی جواهی و فعل و حاز الباب لن یقدمم معمولهو علیه فعل این باب معمولش برای او مقدم نمیشه و وصلهو بهی ارزمن و متصل کردنش رو به او ملازم باش بلا خلاف امسیه ما و هیچ اختلافی هم در این مطلب نیست درست شو. یعنی در این عدم جواز تقدیم و عدم جواز فاصله شدن هیچ ها. و وصل او بهی الزام نمیتونه برش مقدم بشه نمیتونه چیزی بینشون فاصله کنه باز باز بلا خلاف انفه ما اما و فصل هو به ظرف او به حرف جنن مستعمله اما فاصله شدن مقدم شدن که به هیچ وجه فاصله شدن یه استثناء داره بعضی یا به زرف یا حرف جر گفتن مستعملون استعمال شده نزمن و نصرن هم در نظم هم در نصر یعنی ضرورت شعریه هم نیست که قوله قال نبی المسلمینه تقدمون قالف نبی المسلمین مذاق مذاق فایل قال هست فرمود انبر مسلمانان عقدمو جلو بیای. گفت بیا جلو حمله، تقدمو. میگه وعهب الاینا ان یکونل مقدمان، ان مقدمن شده ال مقدمان. وعهب و چه دوست داشتنی است، بعد از ماده حب باهلشو میده. چه دوست داشتنی است پیش ما. یعنی ما دوست داریم، چه دوست داریم ما. ان یکون المقدما یعنی ان یکون نبی جل مسلمین المقدمه میگه چقدر دوست داشتنیه که وقتی میبینیم پیغمبر میگه که بیاد جلو خودش داره جلوتر از ما میره ان یکون المقدمه احبه به فعل اچ چی افعال تعجب الینا متعلق به احبه جار و مجروره ببینید فاصله کرده مال خود احبه بم پس متعلق به خود احبه ان یکونه بوده به ان یکی از شاهد مثال ها همینه حصف حرف جر در این باب باب افئل قبل از ان قیاسیه اننه ها حصف حرف جر قبل از ان چیه قیاسیه آقا امیر موقعی موقع که بالای سر اممار ظاهر شد اینطور طور گفت اعزیز علیه علیه فاصله کرده اعزیز علیه یعنی خیلی عزیز و سخت است بر من ابل یغزان یعنی یا ابل یغزان کنیه هم رو گفت اعزیز علیه ابل یغزان انعراک سریع ان مجددلا این که ببینم تو کشته شدی روی خاک رو خیلی سخت بر من این انعراکه یعنی به انعراکه قول امیر و از اعزیز علیه اول یغزان به انعراکه بینی با افتاده انعراکه سریعا مجدده احبب الینا ان یکون المقدمه یعنی به ان یکون المقدمه زمیر اسم یکونه است. المقدمه چیه؟ خبش و قوله اون مال نزر اینم مال نزر و قول امر ابن مهدی کرد و قول جناب آقای امر ابن مهدی کرد یکی از شجاعان عرب چی گفته؟ گفته ما احسن فعل حیجاع لقاب میگه ما احسن اللقاء ها میخوره به قبیله فلان میگه چقدر دیباست ملاقات کردن قبیله فلان دیدن قبیله فلان رو فل هیجا در میدان جنگ هیجا یعنی هم یعنی فل حیجا متعلق به احسن است اون احب بود و فاصله کرده بود جار و مجرور این احسنت و فاصله کرده اون نظم بود و این نصر ما احسنت فیل حیجائل لغا احا دلست شد؟ ول خفت بذارید باشه چون یکی دو تا مطلب داره باید بگرد حسن الله و عالمین و الله